به این چیزها عادت کرده است. و سیاهی... این... هی نمیچرخه دیگه <تصفح> <تصفح> خوب سیاهی هایش ها یه یه ها. و ها. سیاهی هایش و سیاهی هایش و سیاهی هایش خیلی سلام سلام من آرش هستم و شما خوبه سر تکون بده بدونم خودم تو رو نگاه میکنم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 و سیاهی هایش پر سرصدا دامن کشان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 episode برای برای که که را را نکرد نکرد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 The face you don't recognize Help me call a doctor Put me inside Put me inside Put me inside Put me inside, put me inside, put me inside. I keep the world from the door It Calls me up It Calls me on the phone Tells me all the ways That he's gonna mess me up Still a chance دارم برای اولین و امیدوارم برای آخرین بار دست به چنین عملی میزنم. اینو هیچ کس نمیدونه و قرار هم نبوده بدون. اینو دارم بعد از یک هفته کابوس درگیری و کلنجار با خودم می نویزن. اما نوشتن یا فکر کردم بهش سختتر از اون چیزیه که همیشه فکر میکردم با اینکه از چشم پیش که به آلمان برگشتم ذهن من و مدام به خودش مشغول کرد تا همین لحظه. خیلی سخته تصور اینکه دیگه رنگ رو نبینی صدا رو نشنوید. مهمتر از همه چطور کنار بیای با اینکه دیگه کسی نیست. دوستام، صداشون، خنده مادرم. تمام هفته گذشته من پر بود از کابوس. کابوس و فکر و خیال. یه بار تو عالم خواب محدود و چند ساعتم چشم باز کردم. و دیدم بین خواب و بیاریه. نه میتونستم بلند شم نه بخوابم. ولی میدونستم که خواب نیست این حس. تمام بدنم فلج شده بود. و چیزی جز پلکام حرکت نمی‌کرد.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 از چی میترسی؟ از اینکه دیگه نمیبینم، نمی نمیخونم، نمی در آغوش نمیگیرم، نمیبوسم، نمیخندم و اشک نمیریزم. دلم برای همه این خصلتای انسانی تنگ میشه. پس چرا؟ چرا این کارو کنم؟ چون همیشه از زمانی که خودمو شناختم یه غم عجیبی رو قلبم سنگینی میکرد. بعد هرچی بزرگتر شدم، شکل و شمایل مهیب و عجیبی گرفت این غم در وجودم. حتی لحظهایی که یه سایه سنگینی نداشت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 نابود میشم یا قراره به جایی منتقل بشم هیچی ازش نمیدونم غالبا دوست دارم نابود بشم هم جسم هم روح یا هر چیزی که ازش به عنوان روح اسم میبرم ولی میدونی تصور چی تا وحشت نکتره اینکه بمیرم و بعد از مرگم بفهمم که دنیای دیگه یا مفهوم مشابه به اون وجود داره که قراره به جرمه اینکه تحمل درد و رنج و سرنوشت اون خودمون نداشتم بشم. در م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 این که چشم باز و قلبم میزنم و از درون مردم چه کسی این طوری می‌بینه مگه؟ این همه فداکاری و ایثار از من بر نمیاد بحث خودخواهی نیست، بحث توانه. در توان من نیست این کار. امیدوارم مادرم من ببخشه. شما هم ببخشید دوستانم. هم. همه حالا دیگه یکم یک ده کم کنید و به دنبال دلیل نباشید. دلیل یا بهتره بگم دلایلش رو باید در خصوصی ترین لحظات من در تنهای من با خودم جستجو کرد. فقط ببخشید. time. روز تلفن رو برداشت گفت دیگه نمیخوام حتی صداتو بشنوم گفت از زندگیم برو بیرون دقیقا با همین ادبیه وقتی رفت تا مدت‌ها اهمیت چندانی برام نداشت حتی دلتنگ هم نشدم حتی ازش ناراحت هم نبودم خودم رو سرگرم کردم سعی کردم بهش فکر نکنم کم کم احساس تنهایی کردم سعی کردم تنهایم ما پر کنم نشد هرچقدر برم بیشتر شلوغ میشد بیشتر تنها می شدم به اینم اهمیت ندادم تا اینکه دلتنگی اومد سراغم با اینکه میدونستم برگشتن اشتباه محلکیه اما به دلم اجازه میدادم گوه و بیگاه تنگیش احساسات ضد و نقیز زیادی توی بازه زمانی کوتاه میومد و میرفت که گاهی باعث میشد از همه چی و همه کس ببرم اما هیچ وقت به خودکش فکر نکردم نه اینکه خیلی این دنیا رو دوست داشته باشم نه به خاطر اینکه مثلا روح هم تا قیام قیامت به خاطر این گناه قرار بین زمین و آسمون بمونه من که اصلا به این چیزا اعتقادی ندارم به خاطر اینکه وقتی رفت یه قسمت از منو کش دارم شایدم دلیل دلتنگ نشدن و دلیل همه اون بیتفاوتی ها این بود که یه تیک از من مرده بود نمیتونست هست کنه من دلیلی برای خودکشی نداشتم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 شعر زمزمه کرن تا از سختی کار کم بشه برای موسیقی های مورد علاقه برای بوی خوش زن برای مادرم برای خواهرم، برای همه چیز یله بر نازوکای چمن رها شده باشی پا در خونکای شوخ چشمی و زنجره زنجیره بلورین صدایش را ببافد در تجرد شب با پسین وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد قم سنگینت تلخی ساغه علفی که به دندان میفشری همچون هبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی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 شما به چهارمین قسمت از فصل یکمه رادیو 18 بنفش دادید. با احتساب ویژه برنامه ها این 26 شمین برنامه ما بود. رادیو 18 بنفش رو در فیسبوک، اینستاگرام و گوگل پلاس دنبال کنید. به وبسایت ما به آدرس 18 بنفش داتایار سر بزنید. نظرات خودتون رو به گوش ما برسونید و تمام.